الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين اما بعد درجلسه گذاشته با عنایت به آیاتی از سوره مبارکه مدثر صحبت این به میان آمد که روز قیامت یک روز سختی هست. فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير و گفتیم که زمن اینکه روز قیامت ماهیتان و ذاتان روز سختی هست برای همه سخت است. حتی کسانی که نهایتان سرانجام نیک هم خواهد بود، آنها در مقاطعی از های روز قیامت اونها هم نگرانی دارن تا اینکه الله سبحانه و تعالی آسانی را برای اونها فراهم بکند علال کافرین غیر یسیر برای کافرین آسان نیست. اچاره هست به یک آسانی که الله سبحانه و تعالی در اون روز سخت برای مؤمنین و افراد خاصی فراهم میکند که شامل حال آنها نمی شود شامل حال کافرین نمی شود ضمن صحبت اشاره داشتیم به یک روایت و حدیثی از احادیث رسول الله صلی الله علیه و که بر آن شدیم این حدیث را و این روایت را مفصل امروز با هم بخانیم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد أو في المساجد ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال أو ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقه فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه متفق عليه ان حدیث رو امام بخاری و امام مسلم هر دو روایت فرمودن. در یعنی در بالاترین درجه صحت هست متفق عليه از عبد الرحمن ابن سخر مشهور به ابی هریره اسم سیدنا ابی هریره عبد الرحمن ابن صخر بوده از رسول صلی الله علیه و سلم روایت فرموده که ایشان فرمودند هفت گروه هستند که الله آنها را سایه می فرماید زیر سایه قرار میدهد آنها را در روزی که سایه جز سایه الله نیست یعنی روز روز سختیست است پناهی نیست ای نیست آسایشی نیست جز اینکه الله سبحانه و تعالی برای افراد خاصی آسانی سایه و آسایش را فراهم بفرماید و آنها رسول الله فرمود هفت گروه هستند حالا برادران و خواهران با خودمون بیندیشیم اکنون که ما از جمله این هفت گروه هستیم یا نیستیم شاید کسی الله به او توفیق بدهد که از جمله چند گروه از این هفت گروه باشه جزء چند تاشون بشه اولی فرمود امام عادل حاکمی دادگر پیشوای عدالتگر پیشوا در اصل امام به کسی گفته میشه که حاکم مردم هست امامت کبرا به اهده او هست و شرط امامت در اینجا حکومت و سلطنت است. یعنی امامی که مثلا به اصطلاحات غیر گفته میشود مقصود این نیست ممکنه کسی مثلا در نحو امام باشه در صرف امام باشه در حدیث امام باشه ولیکن اون امام مقصود نیست مقصود حاکم است کسی که سلطنت و قدرت دارد میتواند ظلم بکند لکن عدالت میکند امام عادل اگر کسی ابزار انجام کاری در اختیار او نباشد انجام ندادن آن خیلی شاهکار نیست مثلا فرض بکنید در پیری آدم شهوترانی نکنه خیلی کار شاهکاری نکرده برای اینکه که قوه علاقمندی و شهوات او فروکش کرده در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است ورنه هر گبری به پیری می شود پرهیزگار گرچه که گناه این عمل و امثال این اعمال در شرایطی که شرایطش هم محیانی سنگین تره ضمن این که هنر نیستا خیلی شاهکار نیست ولی اگر در چنین شرایطی دیگه کسی خلاف هم بکنه دیگه خیلی مجازاتش سنگین تره مثلا رسول صلی الله علیه وسلم فرمود سه نفر هستن که در صحرای محشر الله به اونها عنایتی نمیکنه بهشون نگاه نمیکنه صحبت باشون نمیکنه یعنی لیاقتی این ندارن که حتی محاکمه بشن یکیشون فرمود فقیر متکبر میدونید چرا برای این که ابزار تکبر با اون نیست با این حال تکبر هم میکنه یعنی دیگه فوق لاده ادم تسیفیه اگر ابزارش هم داشت جهان رو به هم میریخت بلی آدمی ثروتمند باشد تکبر بکند تکبر از او مزموم هست او را نابود می کند لیکن این طور او را ذلیل و خار نمی کند که الله روز قیامت حتی به او حرف هم نزند ولی فقیر متکبر دیگه غیر قابل تحمله حالا پیرمرد باشد باز هم به سمت فساد برود امام عادل امام حاکم کسی است که زور و قدرت و ارتش در اختیار اوست میتونه بکشه میتونه ببنده میتونه محصور بکنه میتونه پیگرد داشته باشه ظلم بکنه کم بکنه زیاد بکنه لكن عدالت میکنه در حالی که قدرت این کار را دارد نمی کند یعنی کار او خیلی ارزشمنده حالا بیایید باز مورد بعدی رو بیفرماید و شب نشعه فی عبادت الله و جوانی که در عبادت الله رشد بکنه باز همون مسئله هست دیگه در جوانی تمام ابزار انحراف در انسان فراهمه تمام ابزار انحراف در انسان فراهمه جذابیت داری، زیبایی داری، خوشتیب هستی و زبان تو گویاست تن تو بالاخره جذابیت داره زیبا زیبایی ظاهری داری و قوه فساد و شهوات و جذابیت هایی که نباید و نشاید در تو هست همه اینها وجود داره لکن این انسان پا می کشد روی همه اینها و راه الله را اختیار میکنه در عبادت الله رشد میکنه شاب شابون فی عبادت الله جوانی که رشد می کند همینطور تن او پرورده میشود و جا می گیرد بدن او تکمیل میشود در حالی که دارد بندگی الله می کند این گروه دو از جمله هفت گروه از گروه دوم. اون سه نفر هم فراموش نکنیم ممکن است بعضی ها طالب بشود که اون سه نفری که الله به اونها عنایت نمیکنه چه کسانی یعنی یکی فقیر متکبر دوم فرمود مدمن الخمر یعنی کسی که دائم با مشروب سر و کار دارد مدمن الخمر ممکن هست در زندگی یک کسی یک وقتی در شرایطی قرار بگیره شیطان بر او غالب بشه یک باری دوباری مثلا انحرافی هم مرتکب بشه لیکن کسی که مدمن الخمر است یعنی دائم با خمر در ارتباط هست اون کسی است که الله سبحانه و تعالی در سهرای محشر به او توجه هم نمی کند نگاه نمی کند کلام با او نمیگوید. گوید و سوم فرمود دیوس آدم دیوس یعنی مردی که در برابر زن و خانواده و ناموس خودش بیرگه حساسیت نداره مراقبت نمیکنه کی میاد کی میره زن و فرزندش چطور میگردن چطور میپوشن کجا میشینن چه شکلی دارن چه شمایلی دارن حساسیتی نداره رو این مسائل رو مسائل ناموس خانواده خودش حساسیت نداره به این آدم میگن دیوس جوانی که در عبادت الله رشد بکنه زیر سایه عرش الهی هست زیر سایه الله هست روز قیامت چون که در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است سختم هست واسه می شود انسان بعضی جوان ها فکر میکنن که جوان های پاک مشکلاتی که این آقا داره اون نداره. بارها ما به این اشاره کردیم این مطلب. این رو باید همه اصلاح کنند از هان خود را. تمام آن چیزی که تو علاقه پیدا میکنی به سمت آن اون یکی جوانی که خود را نگه میدارد هم علاقه دارد. مراجعه میکنن میگن ما میخواهیم با تقوا باشیم ولی نمیدونیم چیکار کنیم جلو خودمون نمیتونیم بگیریم من بارها این گفته تنظامیز رو گفتم که ما به یکی از اینها گفتیم که ما قرص و دارو و سوزنی نداریم که به تو بدیم تزریق بکنی تو با تقوا باشی قرصی برای تو بنویسیم که بخوری با تقوا باشی سر کار یک چیز است بازی انسان ها جلو دل خودشون میگیرن بعضی انسان ها جلو دل خودشون نمیگیرن نمی مثل اینه که یک نفری از کنار طلا فروشی رد بشه بگه من خیلی دلم میخواد که دزدی نکنم لکن طلای فراوانی که اونجا هست مرا به سمت خود میکشد و من دزدی میکنم این چه حرفیه این حجت روز قیامت آدم ارائه بکنه که بله من مشکل دارم نمیتونم در مقابل شرب خمر مقاومت کنم نمیتونم در مقابل شهوترانی مقابل مقاومت کنم نمیتونم در برابر دزدی مقاومت کنم تفاوت بین این دو نفر یک چیز است یکی پا روی دل خودش میگذارد و خلاف خواسته دل میرود دیگری دنبال دل خودش میگیره در خطبه دوم همیشه این جمله را شما میشنوید و ما ما هم به خود و هم به شما که الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامانی آدم زیرک و تیزهوش کسی که خلاف دل خود میکند یعنی چی خلاف دل خودش میکنه یعنی دلش میخواد دلش میخواد خلاف علاقه که دارد برود به سمت اون کار بد لكن خلاف دل خودش عمل میکنه. الكیس مندان نفسه یعنی نفس خودش رو زیر پا میگذارد. و لی ما بعد الموت و برای بعد از مرگ کار میکند. کند. و آدم عاجز کسی است که؟ اتبع نفسه هواها دنبال هوای نفس خودش میره الله رسول صلی الله عليه وسلم زمانی که مشکلات بر او فشار می آورد کان اذا فزعه امر بادر ال الصلاة وقتی که فشار می آمد کاری رنج به او به سمت نماز میرفت حالا جوان ما چه کار میکنه اذا فزعه امرا بادر إلى الخمر بادر المخدرات مسلمان راهش اینه فشار بر او بیاد بره مشروب بخوره فشار بر او بیاد بیاد بره, بره سیگار بکشه بره مخدرات مصرف بکنه بره قرص بخوره بهادر الی الصلاه فشار می آمد قرآن به فشار آمد قرآن بخوان فشار آمد برو مسجد فشار آمد برو نماز بخوان شاب و نشعه في عبادت الله جوانی که در عبادت الله رشد بکنه همینطور که داره بزرگ و پرورده تر می شود ایام روز روزگارش به عبادت الله می گذارد. این مورد انایت ویشه یه الله سبحانه تعالی قرار می گیرد. و رجل قلبه معلق بالمساجد و مردی که قلب او در روایت دیگر فرمود رجل قلبه معلق في المساجد بالمساجد في المساجد هر دو تا روایت صحیح است مردی که قلبش به مسجد آویخته است یا در روایت دیگر مردی که قلبش داخل مسجد آویخته است یعنی او به خاطر ضرورت زندگی تنش و جسمش از مسجد خارج می شود لیکن قلب او قلب خود را داخل مسجد می‌گذارد. گذارد چقدر تمثیل قشنگیست و هر بار به سمت قلب خود بر و محل قلب خود دلش با مسجد آویخته است محلی که مسجد نداره دلتنگش می‌کنه. جایی که از آن نمی او را غمگین می کند مردی که مرتب با مسجد در ارتباط هست روز قیامت تحت الحمایه الله سبحانه هست. و تعالى است. و رجولانی تحبه فی الله و دو شخصی که این حالا مرد داریم میگیم خواهرانم دارن گوش میدن. بسیاری از این موارد شاید همشو بخوایم بگیم. حالا بحث امام عادل در اسلام البته امامت کبرا برای زن قرار داده نشده. و رسول صلی الله علیه وسلم فرمود لن یفلح قوم ولا امرهم امراۃ مردمی رستگار نخواهند شد که سرپرستی عام و امامت کبرای آنها به دست زن بیفته هرکسی بهره کاری آفریده شده و بدترین نوع ناشکری و ناسپاسی میدونید چیه اینه که آدمی راضی به محوریتی که الله سبحانه و برای او قرار داده نباشه الله او را برای کار دیگری آفریده بگه نه من فلان چیز میخوام تو برای چیز دیگر آفریده شدی اون کاری که تو برای آن آفریده شدی کار دیگری نیست, نیست. کسی دیگر بخواد انجام بده خرابش میکنه تو هم اگر بیای جای دیگه تمنای چیز دیگر بکنی خراب میکنی و اگر نه باقی موارد بین زن و مرد مشترکه و رجل منباب غالبیت گفته شده رجل باشد یا امرأه باشد رجلان تحبا فی الله یعنی دو نفری که دو شخصی که همدیگر را دوست بدارند به خاطر الله دوستی دوستیشان برای ترس و برای طمع نباشد چون دوستی ها بر این دو چیز میچرخد آدما همدیگه همدیگر را دوست دارند یا ارتباط با همدیگر میگیرند یا از ترس یکدیگر یا به تمع چیزی از همدیگه تمع کارن ولی دو شخصی که یک دیگر را دوست بدارن فقط برای الله چون فلانی بنده الله هست و من الله را دوست دارم اونی که بنده اللهی و بندگی الله می کند او را هم دوست دارم به خاطر ارتباطش با الله سر محبتی فی ما مسلمین این طوریه. یعنی اصل خواستگاه محبت خود الله رسول را دوست داریم چون رسول الله هست مؤمنین را دوست داریم چون که مؤمنین به الله هند م... مشرکین را و منافقین را و کافرین را دوست نداریم چون با آن... آنها با الله مشکل دارند نه چون با ما مشکل دارند چون با الله مشکل دارن ما با اونها مشکل داریم و هر وقت مشکلشون را با الله رفع کردن هر کاری در حق ما انجام داده باشند ما مشکلمون با اونها رفع میشه و کینه اونها را به دل نداریم سیدنا خالد ابن الولید رضی الله عنه و مسلمان شد آمد دوزانو محضر رسول صلی الله علیه وسلم نشست و شروع کرد به عذرخواهی کردن که یا رسول الله مرا ببخش که من در مشاهد فراوان بر علیه تو شمشیر کشیدم سیدنا بلال که طلبه رسول الله بود دانش در دانشگاه رسول الله دانش جویی کرده بود و بر اساس فقه و فقاهت رسول الله رشد کرده بود و تعلیم دیده بود آمد گفت ای خالد الاسلام و یجب ما قبله الاسلام يقطع ما قبله اسلام قبل از خودش رو قطع یعنی تو اصلا دیگه تازه متولد شدی کسی حساب نمیکنه که تو قبلا چه بودی رجلان تحبه فی الله دو مردی دو شخصی دو مسلمانی که همدیگر را دوست داشته باشند به خاطر الله در حدیث صحیح آمده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود روز قیامت الله سبحانه و تعالی صدا می زند و می‌فرماید این المتحابون فیا کجا هستند کسانی که به خاطر من هم دیگر را دوست داشتند به خاطر من هم دیگر را دوست داشتند رجولان تحب فی الله اجتمع علیه وتفرق عليه با همدیگر جمع میشن به خاطر الله از همدیگر دور میشن به خاطر الله اینها زیر سایه الله سبحانه وتعالی هستند. و رجلون دعته امرأتون و مردی که زنی او را به سوی خود بخواند برای خلاف مردی که زنی او را به سوی خود بخاند ذات حسن و جمال زنی که دارای حسن و جمال هم هست در روایت دیگر فرمود ذات منصب و جمال زنی که دارای منصب هست دارای زیبایی هم هست او را میخواند به سوی خود برای خلاف فقال انی اخاف الله او می گوید من از الله می ترسم من از الله می ترسم امروز جوانها امروز جامعه ای که ما داخلش زندگی میکنیم کنیم به روال عادی و معمولیش چنین حالی داره بنابراین جوانانی که خودشون رو نگه دارند و اینی اخاف الله بگویند سایه الله در روز محشر مبارکشون باد و رجل تصدق بصدقه و شخصی که صدقه بدهد صدقه میدهد فاخفه اون رو مخفی میکند حتی لا تعلم شماله ما تنفق و يمينو تا جایی که دست چپش خبر نمی شود که دست راستش چه داد یعنی اوج سریت تصدق بالصدقه فاخوه مخفی میکنه حتی لا تعلم شماله ما تنفق و يمينو دست چپش هم خبردار نمیشه نه اینکه یک صدقه داده یک کاری کرده گوشه جهان را و بکند که من فلان طور کردم فلان کار کردم البته که یک اصلاحیه هم بزنیم و بگیم صدق دادن و زکات دو نو هست یک نو هست که علنی داده میشه جهری داده میشه یک نو هست که مخفی داده میشه علماء میفرمان زکات واجب بهتر این است که علنی داده شود برای اینکه این فرض و این واجب در جامعه پیدا بشه معلوم بشه که زکات دارن میدن مسلمان ها و دیگری هم ترغیب بشه برد. زکات سنت و صدقی سنت سریتش بهتر است سررا و علانیہ الله سبحانه و هر دو طور آورده در قرآن و آخری و رجل ذکر الله خالیا و شخصی که یاد الله میکند در تنهایی ففادت او پس چشمان او عشق میریزند در تنهایی یاد الله میکند و چشمان او عشق میریزند که عبادت تنهایی قول یکی از علماء اگر اشتباه نکنم شیخ موسا حفظ الله تو یکی از صحبت هاشون تأکید فراوانی روی این مسئله داشتن که شما نگاه بکنید که اعمال سریتون چقدر است اعمال تنهاییتون ذکر تنهایی صدقی تنهایی فضائلی که در تنهایی که هیچ کس خبر ندارد اونها رو لیست بکنید پیش خودتون ببینید چطوره خیلی مهم هست یعنی یک ایار خاصی به ایمان انسان میدهد پیش خودت، بین خودت و الله فکر کن. ببین اعمال سری و مخفی تو چطور هست. شعن نزول آیات سوره مدت آیاتی که قرار بود در این جلسه بخوانیم. شعن نزولش رو بخوانیم و خود آیه رو واگذار می‌کنیم به جلسه بعد انشاءالله. شان نزول آیاتی که میخواهیم بخوانیم در رابطه با ولید ابن مغیره هست بذاریم برای جلسه بعد شاید که دوستان خسته شده باشند موفق و پیروز باشید حضا و السلام علیکم و رحمت الله و برکتو